این داستان قصه ها و کفاش روزی روزگاری زیر گنبد آبی آسمون کفاشی بود که خیلی فقیر شده بود البته خودش مقصر نبود فقط به اندازه دوختن یه جفت کفش براش چرم باقی مونده بود شبی اون همون تکه چرم رو اندازه گرفت برید و آمده کرد تا روز بعد صبح زود بیاد و دوختن اونو شروع کنه. او که وجدان ای داشت شب در تخت خواب خودش دراز کشید و با آرامش خوابید. صبح که بلند شد و سر سرکارش رفت روی میز چشمش به یک جفت کفش افتاد که با زرافت و زیبایی خاصی دوخته شده بود. اون از تعجب خوشکش زد هیچ سر در نمی آورد که چطور چنین اتفاقی رخ داده به هر حال لنگه های کفش رو در دست گرفت و درون و بیرون هر کدومشون رو وارسی کرد و متوجه شد که حتی یک کوک اضافی یا ناجور هم در اونها وجود نداره کفش ها رو بسیار زیبا دوخته بودن در واقع یک شاهکار بود کفش اون رو در ویترین مغازش گذاشت و طولی نکشید که کفش نظر یه مشتری رو به خودش جلب کرد و اون خیلی بیشتر از قیمت واقعیش پرداخت تا اون کفش رو بخره. با اون پول کفاش تونست اونقدر چرم بخره که برای دو جفت کفش دیگه کافی باشه. او شبانه چرمها رو برید تا صبح روز بعد بتونه آماده دوختن اونها بشه. اما مثل اینکه احتیاجی به این کار نبود، چون وارد مغازه که شد دید که دو جفت کفش زیبا دوخته و آماده روی میزه. مشکلی برای یافتن مشتری هم وجود نداشت. خیلی زود دو نفر اومدن و با قیمت خیلی خوب کفش ها رو خریدن. کفش تونست با اون پول برای چهار جفت کفش چرم بخره. برش این چهار جفت رو همون شب انجام داد تا صبح زود بیاد و اونها رو بدوزه. ولی صبح روز بعد باز کفش ها دوخته شده و آماده فروش بود. این جریان ادامه پیدا کرد او چرم ها رو که شبها میبرید آماده میکرد صبح روز بعد دوخته و آماده فروش پیداشون میکرد. کفش دیگه کاری نداشت غیر از اینکه بره چرم مخره و کار برش اونها را انجام بده کارش بالا گرفت و پول فراوانی به دست آورد. مشکلات و مسائل خودش رو برطرف کرد و همون تاجر ثروتمندی شد که قبلا بود. تا اینکه یکی از شبها که نزدیک کریسمس بود، وقتی کار برش تعدادی کفش رو انجام داد، به جای اینکه بره بخوابه، به همسرش گفت: دلم میخواد بدونم این موجودات خوبی که هر شب میان و به ما کمک میکنن چه کسایی هستن چطور پنهان بشیم و مراقب باشیم همسرش از این فکر استقبال کرد و شام رو روشن گذاشت اونا دو نفری در گوشه پشت پرده پنهان شدن و با دقت اتاق رو زیر نظر گرفتن وقتی ساعت با دوازده ضربه ساعت دوازده شب رو اعلام کرد دو کتوله زیبا بیان که پوششی داشته باشند، اومدن و پشت میز کار کفاش نشستن و تر و فرز کار شروع کردن کفاش که چشم از اونا بر داشت از دیدن نحوه کار و سرعتشون در بخه زدن دوختن و کاری خیلی تعجب کرده بود اون دو بدون وقفه کار کردن تا کارشون تموم شد بعد کفش ها رو روی میز چیدند و بلند شدن و در یک چشم به هم زدن ناپدید شدن. صبح روز بعد زن به همسرش گفت این کتوله ها باعث شدن که صاحب این همه ثروت بشیم. ما هم باید محبت های اونا رو جبران کنیم. حالا برات توضیح میدم چه فکری در سر دارم. من حتم دارم وقتی اونها اونطور بدون لباس این طرف و اون طرف میرن خیلی سردشون میشه. بیا برای اونا دو دست پیراهن، شلوار، جلیقه و کت کوچک بدوزیم. اگر تو دو تا کفش کوچک برای اونها حاضر کنی من هم به اندازه پاشون جوراب میدوزم. با این کار سرتا پای این کتوله های کوچیک رو با کفش و لباس راحت میپوشونیم. کفوش گفت اگه در این کار کمکی بکنم و سهمی داشته باشم خوشحال میشم اون دو کار رو شروع کردن و در عرض چند روز لباس ها آماده شد اون شب زن و شوهر به جای اینکه چرمها رو ببرن و آماده دوختن کنن هدایا رو روی میز کار چیدن و خودشون مثل دفعه قبل در گوشه‌ای پنهان شدند. نیمه شب اون دو موجود وارد شدن و این طرف و اون طرف به دنبال چرمای برش خورده گشتند تا کارشون رو شروع کنند. ولی جز اون لباس زیبا چیزی پیدا نکردن اول خیلی تعجب کردن ولی بعد فهمیدن که اون پیراهن و جوراب‌ها برای اونها تهیه شده با شور و اشتیاق اونها رو پوشیدن از خوشحالی میرقصیدن، روی میز و صندلی بالا پایین می پریدن و تصنیف میخوندن. ما چه کوچولوی خوشبختی هستیم. با این های زیبا که بر تن ما میبینی، دیگه کفاشی نمیکنیم. سرانجام از در بیرون رفتن و دیگه هرگز برنگشتن. چون کفاش با اونهایی که کمکش کرده بودن خیلی مهربون بود، از اون به بعد به هر کاری که دست میزد پیشرفت میکرد. کفاش و همسرش تا زمانی که زنده بودن نیازی به پول نداشتند